کتاب 49 افسانه خواندنی دنیا نوشته بلیندا گالاهر ترجمه محمود مزینانی ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه ای صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده یا علی این داستان ریپ وینکل در یکی از دهگده های کوهستان کاتسکیل آمریکا مردی به نام ریپ فام وینکل زندگی میکرد. همه از وینکل خوششون میومد. اون مردی بخشنده و دست و دل باز بود. که همیشه دست تموم همسایه هاش رو میگرفت و به اونها کمک میکرد. در واقع ریپ وینکل بیشتر از اینکه فکر خودش باشه همش میخواست کاری برای دیگران انجام بده. اون کار همه رو را جز کارای خودش به خاطر همین زنش از صبح شب سرزنشش میکرد و سرش نرق میزد. ریپ اگه امروز خیال نداری نرده های خانم گیرین رو روغن جلابزنی میتونی سوراخ های سخته آقل رو بگیری. به جایی کمک کردن به کشاورز همسایه و سوزوندن آشغالاش میتونی به مرغ آبدون بدی و گاب ها رو بدوشی راستی اگه دیگه نخواستی دیواره. آرن جاکوب رو براش تعمیر کنی سیب زمینی ها منتظرن که یک نفر اونها رو از زیر خاک در بیاره. در ضم گاری هم باید شسته بشه، علف های حیات هم باید بکنی و اون رو جارو کنی. هر روز خدا بسات اونها همین بود. گاهی دیپ برای سگ مورد علاقهش گرگی سوتی میزد و تفنگش رو مینداخت روی دوششو رو بدون اینکه کلمه‌ای به زنش بگه راهش رو میگرفت و میرفت از رودخونه میگذشت و خودش رو به جنگل کاج میرسون. میرفت و میرفت تا اینکه کم کم صدای جیغ و داد و ناسزا و نفرین های زنش اونقدر ضعیف میشد که دیگه صداش رو نمیشنید. اون وقت تنها چیزی که میشنید صدای آواز پرنده ها، خشخش برگای درختا توی دست نسیم و صدای نفس نفس همراه وفادارش بود. که کنارش راه میرفت. ریپ همیشه میدونست وقتی به خونه برگرده باید تاوان این کارشو بده اما یه روز به سر بردن توی صلح و آرامش بدون قرقرای زنش زیر آفتاب دلانگیز کوهستانی به نقنق و جنگ و دعوای بعدی زنش میارزید. توی یکی از همین روزا که ریپ از خونه قیبه زده بود توی جنگل زیر درخت پرسایی نشسته بود تا استراحت کنه شنید یه نفر بلند صداش میزنه. ریپ فام وینکل، ریب فام وینکل، ریب وینکل با تو گوش های گرگی بالای سرش سیخ شد و زوزهای ضعیف و طولانی کشید. ریپ به طرفی که گرگی خورناس میکشید نگاه کرد و میونه علفهای بلند چشمش به یک پر سبز افتاد که تکون تکون میخوره. پر سبب به یک قرمز روشن بسته شده بود. کلا هم روی سر مرد ریشوی بود که قدش به زحمت تا کمر ریپ می رسید. داشت زیر سنگینی بشگه بزرگی تلو تلو می خورد. کسی که صداش کرده بود یک کوتوله بود. کوتوله با اوقا تلخید داد زد. ریپ فان وینکل! ریپ فان وینکل! ریپ وینکل با تو هم دیگه؟ میشه خودتو به اینجا برسونی تا این بشک منو له نکرده دستی بهش بزنی؟ ریب اونقدر به اینجور کارها عادت داشت که تا این حرف رو شنید فوری از جا پرید تا به کمک کوتوله بره. وقتی ریب یه سر بشکه سنگین رو گرفت کوتوله گفت آه ایش حالا بهتر شد خب را بیفتیم بریم. کوتوله به چالاکی به راه افتاد و با هر قدمی که برمی داشت بشکه و ریپ رو پشت سرش می کشید جوری که ریپ در هر قدم تقریبا نزدیک بود زمین بخوره بعد از یک ساعت هن هن کردن و نفس نفس زدن و بالا رفتن کتوله و ریپ فان وینکل از پشت آبشاری سر در بردن بعد از عبور یه در مخفی وارد قاری بزرگ شدن ده ها کتوله همه جای قار ولو بودن بعضی ها پیشبندی بسته بودن و از بشکه های درست شبیه همون بشکه لیوان های گندهشان رو پر میکردن. بعضی ها هم بولینگ بازی میکردن و سنگ های سیاه گرد و صافی رو به طرف چوبک های مخصوص قلط میدادند همه اونها سر و صدا کنان شادی میکردن. هر گوشه چند کتوله، سرگرمه، خوردن و خوندن ترانه های پر سر و صدا بود. یه صندلی بکش جلو بشین. دوست جدید ریب بشکه رو زمین گذاشت. لیوانی توی دستش گذاشت رو ادامه داد. به خودت برس حتما بعد از اومدن این همه راه حسابی خسته شدی. من یکی که داره جونم در میره. ریب فام وینکل مات و مپود هر کاری رو که کوتوله گفته بود انجام داد. یک قلوب گنده از لیوانش خورد و گفت آخش، خستگیام در رفت. لبهاش رو لیسید و دوباره لیوانش رو پر کرد. هیچ کدوم از کوتولهها ها اصلا متوجه اون نشده بودن. ریپ وینکل هم به راحتی گوشه اینش نشست و مشغول تماشای بولینگ بازی دیگران شد. با خودش فکر کرد به این میگن زندگی. این هم زندگیه که من دارم. توی همین فکرها بود که از خستگی خوابش برد. تالا پیروی زمین افتاد و حالا خور و پف نکن کی بکن وقتی بیدار شد از کتوله ها خبری نبود قار خالی خالی بود ریپ خمیازه بلندی کشید و سگش رو صدا زد گرگی بیا بریم هر دو بلند شدن و دست و پاشون رو کش و قوس دادن ریپ ادامه داد بهتر زودتر خودمون رو به خونه برسونیم وگرنه پوستمون کنده است. اونها از در کوچیک رد شدن. از پشت آبشار بیرون اومدن و از کوه پایین رفتن. ریب همونطور که شتابان با گامهای بلندش به طرف خونش میرفت زیر لب گفت حالا کن ببین چی میشه. لابدون زن نادون دوباره چنان دادی راه میندازه که مرده هم از جاشون بپرن. ریپ توی همین فکرها بود که رسید پشت در خونش. دستگیره در رو چسبید. اون رو چرخوند. فکر میکن مثل همیشه با چرخوندن دستگیره در باز میشه. اما محکم به در خورد. چون در از جاش تکون نخورده بود. چند باری دستگیره رو بالا و پایین کرد و زیر لب به خودش گفت باید یه خورده روغن بزنم به این در. چند بار دستگیره رو چرخون، در رو هل داد و گفت: چه جالب، فکر کنم قفل باشه. ولی اون که هیچ وقت در خونه رو قفل نمیکنه. هیچ وقت. درست در همین لحظه در باز شد و ریب دید زنی که عصبانیت از سر و روش می‌باره، وسط چارچوبه در ایستاده. زن گفت: جناب عالی کی هستید؟ چی کار داری میکنی؟ تو میخوای بیای توی خونه من؟ اون زن همسرش نبود راستش ریب فان وینکل تا اون موقع اون رو ندیده بود ریپ که نفسش بند اومده بود گفت تو کی هستی؟ تو خونه من چی کار میکنی؟ زن که از شدت ناراحتی تف از دهانش بیرون میپرید جواب داد خونه تو؟ از که تا حالا این خونه خونه‌ی تو شده؟ من الان 19 سال اینجا زندگی میکنم. ریپان وینکل از ایوون خونه پایین اومد و نگاهی به اطرافش انداخت. سرش رو خارند و مبهوت نگاه کرد. حق بازن بود. اونجا خونه‌ی اون نبود ولی راستش خیلی شبیه خونه‌ی اون بود. وقتی پشت پرده پنجره نگاه کرد دید پنجره ها فرق میکنن. فقط پردههای پشت پنجرش فرق داشت روی ایوان هم چند تا صندلی ناشنا دیده میشد گاریه توی حیات هم گاریه اون نبود ریپ تته پته کنان گفت ول ول ولی چجوری خانوم ریپ فام وینکل کجاست زن با چشمهایی که از تعجب گشاد شده بود گفت خانم ریپ فام وینکل تقریبا بیست ساله که از اینجا رفته درست بعد از اینکه شوهرش از خونه بیرون رفت و دیگه پیداش نشد اونم رفت حالا راهتو میکشی و میری یا پاسبون رو صدا بزنم ریپپام وینکل مبهوت و حیرون شد و گفت: بیست سال بعد در حالی که ریشش رو توی مشرش گرفته بود راهش رو کشید و از خونه دور شد ریشش یهو هم متوجه شد جیشش اونقدر بلند شده که به زانوش میرسه. حق با اون زن بود. اون 20 سال آزگار خوابیده بود. وقتی دستش رو دراز کرد تا گرگی رو صدا بزنه، دید دستهاش دارن میلرزن. اما کم کم چینهای دور لبش رو به بالا حرکت کردن و لبخند مرموزی روی لبهاش نقش بست. زیر لب با خودش گفت. فقط فکرشو بکن گرگی دیگه نق و نوق و گرگر تموم شد برای همیشه ریپفام وینکل سود زنان و شادمان برگشت و با گامهایی بلند به راه افتاد مهمانخانه هنوز همون جای همیشگیش بود کمی بعد این خبر به گوش همه مردم شهر رسید ریپفام وینکل هم دیگه تا آخر عمرش پیش کوتوله ها نرفت کانال تلگرامی هزار داستان داستانهای افثانه ای صوتی نشانی کانال تلگرامی tme نقطه می مهران دوستی نشانی وبلاگ ما m e h r a مهران دوستی